آله طیبین و قافرین و نعت دارمت و اعلاعات دارمشتین اللهم فرنا سمین المشتردین سلام عليكم. هل صحبتی که مطرح بود در ضمن اوخواست که از این به این صورت از زمان شیخ حدسالله و, و سرده شروع شده یکیش همین تقسیم قصد و قصد موضوعی و قصد تاریخی و بعدم بحث ترکیب اصد این تقسیم که آیا امارات و اصول قائم مقام قصد یا موضوعی حالا موضوعی هم به اصلا موضوعش میشن یا نمیشن این یه بحثی بود که از کنم با عنوان مباحث عرض از زمان شکل مطرح شده نبود در اصول قدیم ما یا اصول عرض سنت این بخش به این شکل به این ترتیب و مسائلی که در این دو شده این شکل نبود از قدیم مباحث یعنی که هست یکی شایدی به تجابیه یکی را به علم فتح حاصل از بره و سنت یکی شما رو تو به این نشمار قیلت این بخشی که الان است. به این مناسبت این وقتشون از اعلام مثل مردم نایمی و منوازی دیگران به نحره اشاره وارد بر حکومت یا ورود امارات برای اصول یا بعضی از اصول برای بعضی دیگر شدن لذا ما هم برای این که این عبایت اینجا کاملا مجمله و حد روشن بشه تفصیل این وقت نیشون در بحل خودش آدمه. لذایی مرداری گفت که از بحث از که آقایان دارن به اشاره اما این کمی اشاره پسیلی چون خود این بحث هم واقعا بحث بسیار مفید و صحیحه بحث درست است. و این صافن هم یکی از کارهایی که از زمان شیخ به بعد در اصول متخترشیه خیلی خودوش کار شده این صافن با قبول درمیان اصول عقل صندوق و تا اصول شیعه ما به این به صدقت و ذراحت و این بخص ها مطرح نتوده مطرح هست این بخص ها خواهی نخواهی و که اون چی که در اصطلاحات در مواحظ ما آمده خیلی قردی کرد در کلمات اودما زیاد مثلا سات البراه رو با یه خبر معارض گرفتن خب و همون پردن که احسای خبر یا اما را تو تبدیلیشون رو بجرد مقدمه بر احسای سرسات رو برای رشت باید این بحث در اون کلیتش در فقه اصلابی صادقه کولانی داره یعنی از همون تردان دعوا. برواهیل فقه و که تنظیمی و تنظیمی و منظم و دست بندی شده انصافا از زمان شیخ به بعد حتی شرارن من درست کردن در نصف کتاب جوازه که واقعا فقیه بزرگوار یک مرد بزرگوار اسمان جوازه قدس الله سفر با تم این برقصاب این دصافتی که بعد از ایشان توسط شیف و من موازیه و من دیگران تا زمانی که موازیل در شد روش کارهای خیلی کوبی شده که قبلا نشده بود بس ره به اشاره اجمالیات از کن تفاصیلش بعده نسبت بین اماراتی مثل خبر واحد با یکی از اصول بخواد استثحاب باشه بخواد اشتیاد باشه بخواد اصال طول برای باشه مثلا مثال معروف که زنی که این قطع دم شده خونش منقتل شده اما هنوز قص نگرده خب اهل سنت ادهی گفتن حرامه به خاطر استثحاب خب طبعا استسخاب هم کسی باید رو جستو باز بک میجاریم اینجا استسخاب اشبار اشبار بابا برمان در این مورد خصوص چند تا روایت داریم صحیح علاقه صحیح معمولون ها که اشبار نداره حرام نیست خب این در کتاب قدیم به این صورت مطرح میشد که مثلا استسخاب اختضای و قرمت میکنه لیکن معارضش روایاتیست که بگه جایزه یه معارض تصور میکنه در کلمات من رو که خیر استثحاب معارض با روایت نمیشه با خجج نمیشه اگر روایت داشتیم دیگه جایی استثحاب نیست من از که استثحاب یا اصالتو برایه در بعضی کلمات اهل سنت و شیعه اساس برای معارض با این تنقیه این مساله از زمان شیخ رزوان الله تعالیه شروع شد و, و انصافا هم پیشون قدر بزاری شد هم بعضها هم خیلی روش کار شد خصوصاً که در کلمات سابقی چیزی به نام مثلاً ظاهر و معول داشتن مثلاً مجمل و مبین داشتن فرسی عام و خاص داشتن مطلق و مقید داشتن سعی کردن نسبت بین ادله رو به که اگه انها توضیح بدن بسید این مطلقه این مقیده این عام این خاصه این مجمله این مباینه، این ظاهره این معوله که ما در مواسه الفاظ مقدر از ما اون شدیم بحث ظاهر و معول رو در علمای ما نیوردن یعنی در مثل کفایی نه ولی کتاب برس کفایی هم نیوردن اما اهل سنت دارن ما مجمل و اون رویان و خاص مطلق و مقید داریم محکوم و اما این یکی آخری ظاهر و معرول نداریم که ما نیستوزیات عرض کردیم در بحث رسول لفظی اونجا متعرض شده. یه نسبت هایی رو بین عدله فقها در تایین 1400 سال سنی و شیعه و غیره ما زیدی اسمایی بیغیر اسمایی ها کمتر زیدی ها چرا؟ زیدی ها مقایس رسولی خاص خودشون دارن اینا متعرض شدن و لیکن از کلیم از زمان شیخ دو تا اصطلاح ورود و حکومت هم پیدا شد یعنی تحبیر به ورود و حکومت طبعا این دو تحبیر حتی در اصطلاحات شیخ هم خیلی واضح واضح نیست چایزا هنوز هم به اون معنی وضوع که بگیم مثلا با قول موسیم و یه نرخ استاندارد داره که ما صفحانه علیه باشه به این وضوح نیامده و خصوصا که بنای علمای ما بی این شد که مثلا نسبت امارات به اصول عملیه نسبت ورود اصول بعضها معبد نسبتش حکومته دیگه چون در اینجا مرموازی و مرمونای نیبت که مرموازی اشارت ما یه بسید تخصیص کردن منم این نکاتی رو در بخش بود شعرز کردم اون نکات ناقص بود چون با لفتی مانه داشته باشه ما یه مقداری امروز را هم بلا از بحث خارج میشیم به این معنای به ارتباطی که پیدا میکنه وارد این بحث میشه از کلی، این چهار اصطلاح در این کلمات و اصول متأخر ما آمده دو اصطلاحش در قبل بود تخصص و تخصیص مثلا اگه با اکرامل علماء لا تجار سن جوحال خب اینا میگوستن تخصص جوحال با علماء ذاتا خارج و علماء یه چیزی دو خالی چیزی اصطلاحاً بودن تخصصاً خارجی بعد تخصیص هم اصطلاحاً این بود که در دایره موضوع تصرف نکنه در دایره حکم تصرف بکنه این اصطلاح تخصیص است نشو بودشتن مثل اکرمال علماء وقت حکم در اینجا اصطلاحاً مرادش هم از حکم مثل همون اصطلاح ولی یک تنزد که عرض بکنم در تحریل این عبارت اکلم علما اصطلاحاً ما الان اینجور میگیم اکلم حکم علما موضوع این اصطلاح دقیق نیست در این تحریل عبارت اکلم علما مفاد حیعت حکمه که اون اصلا معنی حرفیه که سیحه افعال اکرام که ما در این متعلق حکمه یعنی وجود تعلق گرفته به اکرام و نسبت به علماء علماء متعلق و متعلقه که که حالا یه مقدار تسامح هست بعضی ها به،, به اصطلاح به اکرام میان موضوع بعضی ها به علماء میان موضوع بعضی این اصطلاح من رو به کار میبرن این اصطلاحی که هست کردن و اون این که اکرام یعنی وجود، متعلقش اکرام علماء متعلقه تعلق. حالا من خیلی میخوام وارد این بحث اون اصطلاح به اصطلاح تسامحیش اینه که اکرم حکم علل علما موضوعی دقیق نیست این اصطلاح تسامحیه در بیشترش اون صحبت های انظار سابقا مطرح شده یه مهم باز باز وقت اون بحثش خیلی از بحث قابل این که فرضیه فلان جا بدن اگر گفت لاتو که ال عل العلماء یعنی هر کدا عالمه خوب دقت بکنید فرز کدا عالمه اما حکم برداشه یور اصطلاحا تخصیص میده با فرض موضوع موضوع صدر میکنه اما از یک فائده موضوع حسن رو برداشته اینجا رو اصلاحات تخصیص میده دو موردیان از بعد از شیخ از صدر باز هم مقداری که ابهام هست و کلام هست که مراد جدی شیخ با عنوان اصطلاح اولین بار در کلمات مخالف کرکی عامل حاکم باشه ما که معلوم نیست مراد از حکومت این معنای اصطلاح ما باشه. به حال وارد وقت حکومت اینا نمیشه میشه تو به اول بحث شورای چون اونجا دارن اونجا دارم اونجا متآرض متآرض بشین به ی تبارک خدا دقیقن لفظ ورود و لفظ حکومت هم در اصول متأخر شیعه وارد شد خوب دقت کنید نه این اصطلاح دارن نه قدما رو خود ما حتی اصلا تو جواهر هم نداریم تو جواهر گال اوقات تحصی... ل... وارد رو به کار برده یا حاکن. مرادش همون تحضیضه این لفظ به کار برده شده مرادشی معنی اطلاعی ما نیست حالا فرق این غرود و حکومت با تخصیص در کجاست اینجوری که متاخرین ما بنابذاشتن خلاصه خلاصش از میکنم تخصیص در دیه. دیگه این خلاصه ای که از میکنم تفسیر که فرقه مقام استاد دارن توی وقت تارز و اصول اینها همین تفسیر رو ما فعلن. قبول میکنم حرف بدی نیست و این یه ناظر چوزیز ایشون بیفرمند که یا بقیه هم همین طور مفاده کلامه اگر در جایی شاره تصرف کرد تعبدی کرد تصرفی کرد اعتباری کرد اگر به مجرد اعتبار و تصرف شاره یه موضوع از این که دیگه خارج شد یعنی این مورد از لسان یک دلیل خارج شد به مجرد تعبد این اصطلاحا ورود اما اگر نه اضافه بر تعبود باید یک نوع حکومت و شهر هم باشه تفسیر باشه اگر تفسیر و شرح بود این رو حکومت میگه و تفسیر و شرحی که راجع به موضوع نه به محمول نه به حکومت مثلا اگر گفت مل علماء گفت مثلا المتقیه المؤمن المتقیه آلمان این اصلاح حکومته چرا؟ اون یک تصرفی کرد با این تصرفش عمل انسان مؤمن متقی رو به منزله آله قرار داد تا تک مولا شاملش بشه حکم ال علما المؤمن المتقی آله این در اصطلاح حکومت اما اگر به مجرد تصرف او خود به خود خارج شود دیگه اونجا رو بروز میگه مثلا صدق العادل من باد مثال میخوام بگم شعره ما گفت رو تصدیق بکنی یا آیه نبع فتبینو اینجا اکم فاسبون به نبعه فتبعیانو. گفتی گفتیم معنای این آیه هم اینه اگر آدل نبعوت حق و خبره این مفادش فرق فقبل خبره لا تبینو نید فقبل خبره نه اینکه لا تبینو فقبل و خبره اگر گفتیم مفاضی اینه عبارت اینه خوب دقت بکنی حالا برگردیم به اون مثال زنی که این قطعه دم شده و هنوز قصد نکرده خب شما اونجا ما هستیم حرمت و اصواق میکنیم به چی به لاتن قذر یقینه بشه لاتن قذر یقین یقین داشتیم به هرمت و یعنی دارید آن شکل حرمت استثاب میکنیم هرمت خوب طبعا این دقیقم اصلاق داره همه موارد شامل میشه که بیجا لاتن قذر یقینه اینا هم میگن تا شاره با هر بل خبرن عقل به مجرد این تعبد دیگه جای لا تنقض نیست دیگه حتی شکی مطرح نیست که انسان لا تنقضلیت رو شک بکنه شاره ما گفت این حرف سدر قبول کرد هم آمد گفت که امام فرمودن یجوز ال که یه جای لا تنخذ. اصلا ذاتن شک میکنه خود طبیعتا شک میکنه به مجرد تنظیم مثلا علی امری معمون فس معله همه فس معله همه و افعه همه فه انه همه یعنی سقه معمون فس معله و سقه معمون همه از گفتی یه جلوز وقتا موجود جلالتر خود نیست و لذا مشهورتر در لسان و علمای متاختر و شیخ اینجوره تقدمه عدله امارات بر عدله اصول به نحضه وروده ورود یعنی این. و اما در باقی اصول تقدمش به نحضه حکومته حالا اینا لیک توضیه عرض می تا روشن بشه برگردیم اولا توضیه رو که من سابق عرض کردم تا برگردیم به ما نحنفی و تطریق بکنیم مطالبه عرض کردیم اگر ما در حال سجده شرف بکنیم روکو انجام دادی میانند خب تصور کنیم در حال سجده شرف داریم که آیا روکو انجام دادی میانند در وحث گذشته من خیلی واضح و روشن توضیح کرد سه جور تصویر میشه تعبد امام یک امام همین حالت سجده تو نگاه بکنه حکم بکنه چی میگه اونجا مقام تحریف؟ امزفی سلاکه اگر گفت امزفی سلاکه همین سجده نگاه بکنه نه به رکوع نگاه کرده نه به حالت قبل از رکوع چون شما سه چیز دارید یکی سجده یکی رکوع یکی قیامی که قبل از رکوع بود که هنوز رکوع انجام ندادید سه تا حالت داریم دیگه یه دفعه امام میاد همه حالت تژده رو نگاه میکنه شما هم در تصرفات شما به احساس به امام ندید اگر همون حالت نگاه کرد چی میگه امز فی صلاه نه کاری به رکوع شما داشت نه به قبل از امز فی این رامو در این گفت اندرس اصال خلحل اصل غیر محرزه این راست اصل غیر محرزه فقط دستور داده انجام بده به چی رو بسون یه دفعه میاد اون حالت وسط رو نگاه میکنه میگه بلا قدر کرد کوه نگاه کرده اگر گفت بلا کرد این میگه محرزه چرا؟ چون داره به شما که تو احراز روکو کردین این تذکر. تو روکو انجام دادید اسمی نگوشن قائله تجاوز یه نفر ممکن است اون حالت قیام شما قبل از روکو نگاه بکنه میگه میگه تو قائل نبودی این روکو نکردی اگر اون حالت انجام نگاه کرد قبل از روکو استخاب اسمشن تو اول که قائم بودی که روکو انجام ندی الان هم تساجه دید باید. یک یقین قبلی داشتین عدم روکو الان هم که ساجدی، درست شد اگر اون حالت قیام نگاه کرد حکم میکنه به عدم روکو که اصطلاح اسم شیع استطاع تر سه جور میتونه حکم میکنه اگر بگه روکو او نکردی اون دیگه تابع تعبوده ممکن است بگه توشون در حالت سریده است روکو او نکرد رو نواز باسه در مفرد رو. ممکن است بگه نه به شروع انجام بده بعد بعد بیا دستش اون لو فوب تعبود و کیدیه تعبود که وارد بحث فلسفی مودم میشیم اون بعد این روچن شد مثلا سه جور میشه تصور کرد اون یه مثال دیگه هم روز عرض کردن شما گوشی از بازار خریدی شک میکنین تضیه گزار نشه اینجا هم همیشه سؤالات هست دقیقا همین یک امام بگید درده هم سآل مقابلن گوش خریدم بردن مکنیم شاک امام بگید بخور بخور یعنی این حالت نگاه کرده این میشه از میشه از و غیر مبارس. یعنی به حالات سابق دیگه کار نداره یه لفت شما میگه شما از یک مسلمان نفیلین یعنی اون قصه ها قصه ها بسلمان نبود ببینید رفت رو درست قصه این میشه قاعده سوب یه دفعه به شما میگه شما تو کشتارگاه بودین ببینید درستینه تربولید و نه تعمل بکنیم یه اگه رفتون حالت قبل از ترکیه، این میشه استثاب عدم تفکیه پس شما سه حالت داریم روشن شد مثلا در مقام تعبوت سه جور میتونه حساب بکنه یکی حالت قبل اینجا بخور به استثاب این میشه اصل محرس چون قبل دارم که عدم رو خور. دو حالت خود رو خوب این میشه قاعده تجاوز سه حالت خود سجده این میشه اصل غیر محرس تو انجام بده کار که انجام نه سامن بکن این توضیحی بود که بنده دیروز عرض در بحث کنه این مقدار از این تقریبی که من عرض کلمات را الان نیامده. اما این مقدار بحث حکومت و ورود رو درست نمی کنه حالا این چونیگه هم مروز که این بحث ناقص امروز. بحث فنی اینجاست ما یک لاتنگذر یقینه به شک مطلق داریم خوب دقت بکنیم یک لاتنگذر یقینه به شک مطلق داریم اون مطلق همه جا رو میگیری یکی همه تا حالا اینجا پرز ما این بود که در مورد اگر امام خواست گفت بکنه من از حدیث خون بود. حالا نه بحث اینه سوال فنی یک لا تنقذل یقین به شک مطلق داریم سوال یک بلا قدرکت هم داریم یا این حدیث دیگه این نمه شک و فیشه این لم تجوزهو فعضا جوزتهو فشک و که لیته بشه اینه داریم پس یک لا یقین به شک مطلق نه در خصوص سلال خب اگر لا تنقض یقین به شک مطلق بگیریم یقین ما عدم رکوع است یقین ما رخ یابد قبل لا تنقض یقین به شهوات رکوع انجام بده یا حکم بر صدر نماز بکنه این رو گفتن چه معنی می‌ده؟ که ظوا تنقض یقین به شهادتوره یکی هم داریم اذاد جستحو فشک که لیت بشی شما از رکوع رد شید جواز اجازه رد شده شما از رکوع رد شید تشک که بشی و دقت بکنیم این نمشکو فیشه این لم تا جزهو فی ازا جزهو فشکو که کلام فرمی کجاست نسبت بین این کلام شکو که لیسه بشه. شک. شکیه ولاتن قاضل یقین به شک این دوست شک نصفتشون چیه؟ اون لاتن قاضل یقین به شک باحثی اینه که اون داستان گزریابین به شک مطلقه به غلط اینجا گفت شک و کله بشه اینه چجوری تفسیر بکنه سؤال یه تفسیری که غالبا سابقا متعارف بود تخصیص بود یا تغییر این متعارف این بود تفسیرش هم واضحه میگه آقا دارد شما هر جا حالت سابقه داشتی با حالت سابقه عمل کن مگر در نماسی از محل برسیدونی خیلی واضحه روشن شد, شد تفسیر متعارض چی در اصول سابقه ما و چی در اصول اهل سنت حالا چون این نمش شک و لاتنگ و ذلیب نینوشش حالا فرص این تقیید محلق چون تقیید و تخصیص اقتباطاتی با هم داره. الو مطلقاً آن با هم فرمان دستش گزارشینی میکنم تا حالا من که میگم تخصیص مراد روانگاهی شامل تغییرا میشه اشکال مولانا کافی و, و نه فرمان که اینجا تغییر تخصیص نیست خیلی خب حالا مورد ما از تخصیص یعنی شامل تغییرا هم بشه. پس نسبت بین اذن جز جزء تاو تشک و کلیت بشه بذات بالا تغذ یقین به شد. شک شک نمونونجا نسبت این جزء تخصیص او الله هم قضیلتینه به شرط مگر در نماز وقت و مگر یه تخصیص خیلی روشنه دیگه این این تفسیر متعارضی که قبل از شیخ بود این تفسیر متعارضی که قبل از شیخ بود روشن شیخ رضوان الله تعالی علیه گفت نه اینجا تخصیص نیست اینجا یه نوع شرحه یه نوع حکومته این داره مضلول لا تنقذ یقینه به شک توضیح میده و بیان میکنه این چه میگه لا تنقذ یقینه به شک میگه مراد من از شک نه لا تنقذ تخصیص به لا تنقذ میخوره. چون میگه لا تنقذ یقینه به شک مگر در حال نماز با سجاوز اون قذ رو این اون قذ رو میگه می لا تنقذ تخصیص شیخ میگه نه این به لا تنقذ نمیخوره. در لا تنخواست تصرف نمی کنه. این میاد در حقیقت تصرفش رو کلمه شکه ندرود لا تنخواست ما در بحث استثناء اگر آیین ازشون باشه آیین می کشید داشته از اجایب امرم هست از شرح شافیه نجمالعیمه رضی رزوانو لا ساله علیه شرح شافیه نه که معروفه بلکه شر کافی بود نه اینکه شر کافیه. از شر کافی نه گله امیررضی نه حرف ایشون خلافا دل معلو به نو علما شبیه این کار رو ایشون انجام داده تو استثناء. میگه اگر گفتیم جا ان القوم الا زیدن، ایشون میگه مشهور تحت استثنا گرفتن یعنی حکم مجیء رو که بر قوم بار کرده از زید برداشته یعنی قوم آمدن مگر زید. یعنی زید نیامد. معنی مگر این یعنی زید نیامد. ایشون میگه نمیشه تناقض داده کلیه حرف عجیب یا مثل این با جلالت شعن ایشان کلی حرف عجیبیه باور کرده سلوی جز مثل ایشان لذای ایشان در اونجا هم همین میگه میگه جاال خوم و الله این اینه الله به قوم خورده نه به جا. برگم کچه ملعی میگه این الله به قوم خورده اول الله به قوم میخوره بعد از این که زید از قوم خارج شد اون وقت جاال یعنی اینجوریشون معنامه کنه قوم بدون زید آمدند قوم با قول آیون <تصفيق> الا همه غیرگزنان اسمی گرسه قوم خیرد زید بگوییم چون چونیشون که چناغند رازم میدونید خیلی عجیبه نسالان اگه من نگیزون را کندم بازی در درست, درست واسم اگر خیلی عجیبی سلوی این کلام از مثل ایشان با جلالت شنده ایشان خیلده حالا اون در وحث استثناء اینجا هم شیخ خبیه این حرفه می پردن این نمش شکفی شیخ خوده شیخ میگه توی شک تصرف میکنه نه سوال تنگل سآل شد این دو تا دلیلی که پهلو هم بگذاریم توی لا تنگل تصرف میکنه یا توی شک تصرف میکنه شیخ قدسالله نفسه میگه توی شک تصرف میکنه نه توی لا تنگل یعنی در حقیقت داریم که اون شکی که لا تنگذر یقینه به باید تو مثل نماز نباشه و الا باشه دیگه نیست فشک که لیسه بشی این تصریح خوب دقیقی زراسته اینجا هست که خیلی ذریبه چون در کلمات از خواب می چون نا ما آتن تو تعارض میاد یه چون گفتن الان مجموعی اینجا مفرح بکنیم شک که لیسه بشه یعنی لیسه به شک شک تو شک نیست کلمه شه یعنی شک خوب تنبال برمودی؟ فشک ککلیسه بشه یعنی شک ککلیسه بشه خب اگر شک نبود لاتن خوزه یکی نبیشه بگی نمیگیده چون شک نیست؟ تو کنید خواهی نخواهی استثاب جاری نمیشه چرا؟ چون آمد تطرف کرد خوب دخلت دیم این تصرفش این بود شک را عرض کرد با شک ککلیسه بشه حالا که آمد بعد از که این تصرف رو کرد در اون وقت در این صورت حرفیم کردیم به این که به اصطلاح استثاب جاری نمیشیم نظر با قاعده تجاوز اصلا استثاب جاری نمیشه. چرا؟ چون رفن استثاب تنخوض الیقین به شک می شکل نیست رفنش شد از این نبود رفنش برداشه شد یقینش هست شکل نیست لذا اونجا حساب جا میشه. این راجع به تریب کلام حکومت که از اعلان با آدم ما استستای کرد. اما ورود تریب ورود این باید این معنا معناوب بود. این الان من یک توزییح زننج توضیح خیلی ضروری و مفید در ابواب زیادی به درد شما میخوره مجبورم اینجا میکنه از وث خارج بشیم، خیلی نقطه ضریفه. توضیح ورود اینه که ما بگیم شک و کل ایسه بشه یعنی شخص نیست. شعی رو لیسه به موجود بگیریم این خیلی زرا نقطه زریبه اگر شکوک لیسه به شعی یعنی لیسه به موجود بگیریم یا شکوک لیسه به شک بگیریم فرقش اینه یکی مفاد لیسه ناقصه است، یکی مفاد لیسه ناقصه اگر گفتیم لیسه به موجود اصلا شک نیست این میشه تصرف در خودش هم. این مناسب میشه با ورود، به مجرد تطرف برداشته شد اما اگر بگیم شکو که لیسه بشه یعنی به بشت این میشه مفاد لیسه ناقصه مثل زیدون لیسه قایمه حالا اینجا من یکمی تودیم مجبورم بدن یکمی یک ترانتیزی باز داریم میشهالا وقت که باید بکنه یه قدر برمانی ترانتیز باز, باز دارم تا بعد اعلام و دستان ترانتیز فیلان تو از کلم من که دارن صحبت رو صحبه رو با اون مجموعهی که ما مخصوصا در زمان صدور نزول وحی داریم چه در مکه چه در مدینه یه بحثی هست در نظر تاریخی که در الفاظ عربی در زمان نزول وحی یک دو قصور تعبیرات قانونی هست یعنی این تعبیرات قانونی متعارب در در اونجا نبوده اولا در همون جامعه اصلا قانون نبوده نه اینکه که در اونجا نبوده اصلا توی ایران هم نبوده تو روم هم نبوده اصطلاح قانون در جایی فرض میشه که یک امر اعتباری باشه خارج از هیتیات افراد اگر نظام اجتماعی بر اساس حیثیات فرد حاکم تنظیم بشه که اصطلاح ما بشه یک تا میگیم این اصلا قانون نیست براز این آقا گفت امروز این کار انجام بدید بالا انجام دار سرده گفت اون کار انجام بدید اون کار پس ساده شید دیگه گفت اصلا بی قانونی مال اینه یعنی اگر نظام تابعه به از تحبیرات کیش شخصیت یا پرتوب شعاع شخص باشه این رو اصطلاحا قانون نمیگه اساس نظام قانونی برای این است که قانون یک حقیقتی مثل شخصیت حقوقی که در زمان ما نگ خارج از سرد حاکم داشته باشه که نسبت حاکم و محبوب و مردم نسبت اوه علا حد سوا باشه کی مثلا قانون هست که نماز کنده باشه خود حاکم که پیغمبر هست نماز بخونه مردم بخونه خود پیغمبر بخونه. مردم بگن از شزن و محمدان عبدو برسول خود برگر هست محمدان عبدو رسول، هیچ حرق نمیکنه. این نظام خارج از دایره شخصیت شخصه اینو هم میگیم قانون این که میگیم تعابیر قانونی نبوده به خاطری که اصولا نه در مکه نه در مدینه در ایران در روم اصولا قانون وجود نداشته ما قدیم این قانونی که فعلا پیدا شده که متعارف است و مدلون مربوط به حمورابیه که اونم باید گفت در حقیقت روه قانونی بود اون معنای دقیق نداره حدود 3000 خورده شده حدود 4000 سال قدمریشته شده قانون حمورابی چه بیشتر جزئیات و اون مقداری که من دیدم مثلا گابش اوفران فروخ نسه پولیش داد نسه نمی‌تونه این کارو با... بیشتر این مواردی که به اسم مسئله شاب شده 370 خورده ماده قانونی داره انصافا مفیده ولی شما هم تو بحث فقهی کار بکنن یه تیکیه قانونی هم پیدا شده از یمن که او از این 5000 خورده سال قبل یه مقداری از حمورابی جلوتره او خیلی مختصره اما اونی که الان به اصطلاح به صورت طبیعی به عنوان قدیمی ترین قانون مدرن روی کوری زنی روش حساب میخواهم قوانین همورابیس که در همین ایرام هم بوده بوده ایرامی کلان بلبشوز الان در این تاییون که در او قانون هاشم بوده همین ایرامه تحصیل همورابی بوده چهار سال قبل که از سرچاپ همیشده بسم اسم المسله چاپ شده مسله با سین نواز ها این راجعه بیم؟ در جایی در ای که نظام قانونی, خواهی نخواهی فقر قانونی هم خواهی مثلا فرصم در قرآن به جای واجبت کتبه کتبه علیکم و سیان خب این کتابت تلازمی با وجود نداره این به خاطر یک نقطه تاریخی خب روان ها موازه شرحش بشن یه مطلب یه مخلط اینه در قلال بحث اصولی زیاد متعرض شدیم و خواهدی برش متعرض شده. یه مطلب اینه که اصلا در بعضی از جوها که مطالب عقلیه کمی دقت داره در لغت عربی ذاتا یک نوع فقر در این فرهنگی این جرد داره حالا دیگه این لازم نیست که دلاته بر تأخر بکنه یک نوع فقر فرهنگی از این داره مثلا ما الان در لغت فارسی فرق بین هست و هست میگذاریم که اصلاح هست و کانه تامه میگی هست و کانه ناقصه میگی زید هست ذی اشتانا است، ذی اشتادت است. ما در لغت فارسی کانه تام و رو دو تا واژه مستقل داره. بین هستی و استی فرق می‌کنه. این فرق متصورا در لغت عرب نیست. اصلا در لغت عرب کلاً برای این وجود، این نحوه از وجود، اما در ازل کانه استفاده کردن که ویژگی خصوص نیست. درستش قیل دادن کانه تامه کانه ناقصه <تصفيق> این قرد کردیم. اون کانه ناقصه هم نبود ولذا به تحضیر, تحضیر منطقه به تحت ازادی وستویر اله ها خوبه مجلوش بگه یه مثلا در تحضیره درستانی تحضیر این در زبان هندو اروپایی ولی زبان پارسی فرق بین استی و هستی بود بوده قدر این یک نقطه زریفیه و در لیته این در وجودش که هر دارم نداشت در لغت عربی مجبور شدن استعاره از خانه بگیرن در مقام عدم هم لیته داشتن که این لیته فقط ناقص هست یعنی لیته در لغت عرب تامن استعمال نشده آنه حکیم نشده تو هواه برسود بسن که لیته تامن ازدفی شابت نیست بله لیسه در لغت عرب هیچ وقت تامه استعمال نشده یعنی عرب میگه که لیس زیدون زید نیست اگر گفت لیسه لیسه زیدون من، حتما باید ناقصه باشه ولی ازا اونجا توضیح ده که میگن لیسه ناقصه لیسه ناقصه عدبی نیست یه اصطلاح علمیه حالا فرقیم دو جه لیسه لن کن لن یک کنیزید حالا باید که پس در لغت عرب این چهار یعنی تا یعنی تام نه وجود تام و وجود ناقص یعنی غیبت تام و ناقص و نفی تام ناقص از این چهار تا نسبت به وجود هیچ کدومش نبود نسبت به عدم فقط لی ناقصه گذاشت اما در زبان فارسی نسبتا وجود هر دوش بود هستی و استی هست و است این خیلی نقطه ظریفیه این تصور بعدها هم دیدم اخیلا کسی نوشته من فکر نمکم درست باشه برای توجیه خوبه اما فکر نمکن این معتقده که این که عبده قائل مجسمه بودن مثلا متقلمینه حتی شیعه نسبت دادن که قائل تجسیم بودن که خدا جسمه این معتقد کلمه جسم در اصطلاحات همه مرادفه هست خارسیه چون لغت عربی قصور داشت به جای کلمه هست گفتن جسمه مراله از جسم یعنی بوجوده نه اینکه که هست حس. هسته نه اینکه جسمه مثل کلمه جسم ولکه این فکر نموکن درست باشه انصافا این تحریف بله احتمال بسیار قوی داره لفظ شیع نلا شیع نلا کل اشیار لفظ به معنی هست باشه نه لحظه جسمون جسم معنی هست بزنش سیار بریده خوب غلاله باشه. پس در زبان فارسی ما یک هست داریم یک هست داریم خب دقیق بکنیم احتمال بسیار قوی داره که در بعضی از ها شیل در حقیقت به معنی اصل هسته موجوده یعنی کانه تامه اما در مقام لیت نابسه انصافت در لغت فارسی لحظ واحدی برای هر دو داریم داریم هر دو که انما در لغت فارسی ادات سر که نباشه گاهی بر سر حس میاد نه هست و نه هست اما تلخوزم هر دار نیست تلفظ میکنن ولیزا میگن زیب نیست شام نیست مثلا نیست رو یعنی نه هست اما میگن زیب دانا نیست یعنی نه هست ظاهرن فکر میکنم در اثر استعمال هر دو بوده در اصلافات یکی نه هست و یکی نه است. اما الان ما تو مقام تلفظ هر داری یک تلفظ تلفز میکنیم و هر دو میگیم نیست خب دقیقه در هر دو میگیم نیست دقیقه پس این یک نکته ایسایه در نظر بگیرن که در بعض از محایم قانونی از یک جهت که در دو اصوله و خیلی همانون و در بعضی از جاه فرنگی از جهاز دیگه یه قطورهایی یعنی مرادفهای لغت‌ها رو باید حساب بکنید. این اگر این مطلب درست شد دارید فرانتزی اینجا ببندید ببینید این لمشک و فیشه این لم تجزه فعلا جزته فشک و که لیسه بشه این لیسه بشه میشید یعنی لیسه به موجود این میشه مفاضل خانه مفاضل لیسه تامه یعنی نه هست شک نه هست به صلاح فارسی بخواه مراده فارسی یا شی در اینجا کنایه از شک فعل نشکتکه لیسه به شی یعنی لیسه به شک که میشه مفاضل لیسه تاقناقصه این آیا مفاضل لیسه ناقصه یا مفاد لیسه یه میخواد بگه شک نیست ببینید یه دفعه میگه نه شک تو شک نیست این یک نکته ای که آثار علمی برش بار میشه که خیلی هم ذریفه شبیه این بحثم تو حدیث رفعه این ظرافت ها با خوب دقیق بگمید رفع انعومتی الخطا این معناش چیه؟ این رفعه به مفاد تام است یعنی خطا نیست بسیار نیست رفع نیست در تحضیب الاسول اینجوریشون معنی کردن یا نه مفاده این اینه خطای شما مال شما نیست به مفاد لیته ناقصه و ده تا قسم اینی که ادعی مرحوم شیخ میگه مراد رفع عقوبته این رفع عقوبتی در رساله شیخ حماده این تفسیر قانونی شینه که من الان عرض می یعنی شیخ با این جور میگه رفع عقوبه البته ما میگه رفع عقوبتی در رساله شیخ البته عقوبتشون در زیادی زیاد یانو در اساس به شیخ نداره من هر کلم حدیث در رفعشون سنیون به متن ثلاثی داره تو بحث مجواله و این کتب اصولی مثلا 800 سال 900 سال قبل این بحثی دارن که رو به‌عنوانمدی به معنای مؤاخذه یا عقوبته اونجا معنا شده حتی بعضی جو اجازه که اصلا که مراد همین نبی عقوبت و مؤاخذه اون مؤاخذه رو ما برداشتیم بذارید برداشت خودمون حکم جزایی بهش کلمه عقوبت و مؤاخذه اون دقت بکن به جای مؤاخذه و عقوبت بگوشیم حکم جزایی نفی حکم جزایی و تفسیرش اینجوری میشه دقت کنید تفسیرش اینجوری میشه این رفت رو به مفاد لیثه ناقضه معنا به اولاً چرا به مفاد لیثه ناقضه؟ به خاطر کلمه انعومتی رفع انعومتی تا کلمه انعومتی آمد یعنی فعل شما پس اینجور میشه فعل شما نیست فعل نیست یعنی چی؟ مثلا شما سراموش کردید یا ازترار و اکراه بود کسی فرصان هفتی رو سر شما گرفت که شراب بخورید این شراب خوردن شما خودتر کنید این شراب خوردن شما بر اساس اکراه فعل شما نید تقریبا که هر. یعنی شما فعلش شما یعنی عقوبت و جزا نداره احکام و جزایی ازش بردسته بیشه اصلای فعل شما نبود شما که انما شراب نکردید خوب دقیق کنید نه اینکه شراب خوردن نیست اگر گفتیم شراب خوردن نیست میشه لیثه تامنه شراب کردن فعل ان انعومتی میشه لیثه ناقصه اگر شد مفاده لیثه ناقصه طبیعتاً چی میشه طبیعتاً مرجعش چون این میشه که بگه به شما اسناد داده نمیشه اگر اسناد داده نشد یعنی افکان و جزایی برش بار نمیشه. با قول آرون نفع عقوبت یا نفع معاخضه این اقاره که شیفت رفع عقوبت داره که مراد نفع معاخضی یا عقوبت باشه مراد جدید اینه این یکی از است که با الان تو مقام تعبیر داریم مثلا رفعن امتی رو اینجور معنا بکنیم به مفاد لیسه تامه بگیم خطا نیست یا به مفاده لیسه ناقصه خطای شما خطای شما خیلی؟ خطایش فعلا جز تهو فشک و کلیسه بشه خوبه درسته نکنید این اصلا زرافت های تو به این شریف من هستم در کلمات حالان نامده اما این شریف من هستم این خیلی عباب عدیدی رو درسته براتون باز میکنه این فشک و کلیسه بشه نسبتش بالا تنگذر یقینه به شک چیه سوال اینه ایشاید قراره شک از بعد تعبد. هست اما تعبد. اگر گفت شک نیست به مجرد اینکه تعبد کرد شک نیست لا تنقضی یعنی به شک برداشته میشه. تنزیل دیگه نمیخواد. نمیخواد بگه زیدون ازتون زیدون ازتون تنزیل باشه. دیگه اگر خب شک هکه خوب تعمدونه شراره مثلا برای یه فکری بکورید شک و کلیت به شیء نیست به موجود این چه معناو شک و کلیت به شی یعنی لیست به موجود اصلا شک نیست بله؟ یقین شهادت بله تکوینا هست تعبد به مجردی که گفت تعبدن شک نیست همین که گفت شک نیست واسه قضای یقینی میاد نمیشه شو گفت لا تن قضای به شک اما این چه مروضی؟ اگر اینجور معنام رو گلیم؟ اینو نه نوشتن آقایون هایون که مسلم که ورود معنا نداره دفت نگردن در که و از دوست به عرضت و رو این توضیحیست که من عرض میکنم که خیلی ابواب زیادی رو در فهم کلمات و در فهم فهم مذر به شما میخوره یا در شک و کلیسه به شیع شیع به ساجز جازه اناوینا که بر همه قابل امتبا در تا تا خداوند نارون که جلصور از ناشتی می‌ذارن تفهم باشه اینطور تفهم چاپونه باشه شنی از علل کمش کلام داره چون فال چی ازن که زو ذاتیات این سال وقتی جلصور از ناشتی و شج زناوین انتظزایی است یعنی شک که به شک شی یعنی شک چون شی در هر جا مناسب خودشه اگر گفت شک که به شک میشه حکومت مولانا تکمل در لا نکته اینه نسبت بین شک و کلیت بشه با لا تنقض به شک چیه یک و همان مشهور تخصیص یا تعیق دو مشهور بین قدما دو مختار مثل استاد حکومت که احتمال داری نگفت من اون یادم میمید کسی از اعلام گفته باش چون بید تقریب نیدن جایی هست من آن تو ذهن کسی گفته ورود لکات تدیشن روشن کن اگر این نمشکک و فیشه این لنتج و هو یا بلاغد رکر ناظره بلا تنقص باشه تخصیص ناظره به شک باشه اگر میخواد بگه شک نیست به مفاده لیسه ورود اگر بخواهد بگه شد که تو شد نیست تسته حکومه این سه تا ممنای ازازی که روشن شدید شد خیلی دیگه ریشه ها شد و مبانی. حالا تقریه داریم که بنده دارم هیچ کدو نیست حالا دیگه